آیا حضرت حجت سهر الله علی در ازاداری مثل عربعین شرکت میکنند مثلا میزبان مردم میشن موکب میزنند موکب لازم نیست بزنه چون خب الحمدلله شیعیان هستن میزنند اما به زیارت میان مثلا در روز عرفه به عرفه میان تشریف میارن و مناسق مستحبه الهی رو ایشون هم حی و حاضرن دیگه هم جسم دارن هم حاضرن امام المتقینن تدا به اعمال مستحبه شرکت در روزه ذاتیشون مستحب مستحب اکیده شوائر الهی لازمی که همیشه مستوار باشه و برپا باشه این کارا هم از شوائر الهیه ایشون هم امام شهائر الهیه این آیا... میگن ما مثلا در مجالس حضرت تشریف میارن امید داریم که تو مجلس ما هم بیان معناش اینه روالش این هستش که مجلس جدشون شرکت میکنن اینشالله تو مجلس ما هم یه قدمی بذارن اینجور تقاضا میشه اگر حضور بیابن خودشونه یا تمثالشونه تمثلشونه اگه خودش بیاد که همه میشنسنش قراره که حبس بشه ایشون خدا میخواد ایشون حبس بشه لذا تو تصادمات و تصادفات و اینها قرار نمیگیره دباری بعضی از روزه ها مشهور شده که مثلا روزه هست سبلفه علیه السلام که مثلا وقتی خانده میشه حضرت حضور پیدا میکنن این هم به معنی امید و حضور یا نه این یه خصوصیتی داره خودشون خودشون دارن در اون زیارت شریفی که منصوبه به حضرت هست که من در مثلا ازهای شما جاداره خون گریه کنن نشون بده که از از از شركت میکنه